از دیروز چه اتفاقی افتادی که فکر کردی بیایو با من حرف بزنی دیروز فکر میکردم کمه حرفو از قول خودتون من بعدم فهمیدم که بخشش نظر مادر خب منم مخالفتی باشون نداشتم شما میدونستی من نه خونه دارم نماشی ولی ازم خواستیم بیام با هم حرف بزنین حتما هدفی داشتین وگرنه دلیلی نداشته بخواییم با من حرف بزنین میشه خواهش کنم دلیلتون رو بهم بگی. من حرفامو زدم بله ولی جلسه دیروز برای اون حرفا نبود خب تو چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم شما نظرتون به من منفی نبود منفی شد یعنی فکر میکنی که من موافق ازدواج شما بودم و حرف این مادر ازدواد منو مخالف کرد؟ تقریبا همه چیزی نیستم <تسجن> آقای نظری شما اصلا فکر کنید مادر منو ندیدین اولین بار منو ببینید چی میخواستیم بهم بگید همون حرفا رو بهم بگید من در مورد دخترم یک بار اشتباه کردم دیگه نمی‌خوام دوباره منو اشتباه تک کار تو چجوری یه زندگی مرفع آروم برای دختر من تأمین کنی درست کنی در حالی که داری با موتور مسافق کشی میکنی و تازی به برنامه ای رو میخوای راه اندازی کنی که آخر آقابتش هم اصلا معلومی چی هست. ها؟ من باید با اما و اگرها سر نویشه دخترمون گرفه بزنم درسته؟ آقای نظری شما به من فرصت بدین شیش ما که چی بشه؟ که کار رو قلتک بیفته. شما مادر منو دیدید منم دیدید حداقل الان از یه چیز مطمئنید اینکه ما خانواده‌ای نیستیم که چشممون دنبال پولو و باشیم درسته یه فرصت به من بدید من هم مثل شما صد درصد مطمئن نیستم اما امید دارم با همین امیده که می‌خوام ادامه بدم و به آرزوم برسم فرصت بدم که اسم تو رو, رو دختر من اگه چی وقت تو ببر میکنی برید رونا دخترم چی میشه باید بهش بگم بعدش 6 مطور رو فراموش کنه و اونم همه چیز رو از حافظش پاک کنه آ؟ من به شما قول میدم همه تلاشامو میکنه اومدی و همه اینا که گفتی شد مادر تو چطور رازی میکنی؟ من رازیش میکنم من شرط دارم باید قول بدی اگر کار نشد بعد ششمه ماه زندگی دخترم رونا بری بیرون رونام باید این قولو به من اگر وضعیت همین بود باید تمومش کنی قبوله ماته آره اما اما نیا بابا همینشن فکر نمیکردم قبول کنه فقط سرمایه کم داری لسمون پر پول بود خیالمون راحت دار بود نگران نباش رامین رفته دنبال وام چرا اینجوری من یه قولی به پدرت دادم از طرف هردمون غیر از این ماه؟ اگه کارمون تو این مدت نگیره... دیگه نباید همون ببینیم. چرا این کار کردی؟ کردیم؟ شدم. از قول من چرا قبول کردی؟ کاری نداشتم. ممکنه موفق نشیم. اون وقت چی؟ ببین رونا ما باید کارمون درست شد. من قول دادم. من اصلا سر از کارهای تو در نمیارم. این از قول دادنه اون از قهر کردنت از مادرت خبر داری؟ آره باید نیست تو همیشه وقتی با مادرت حرفت میشه قهر میکنی میزنی بیرون؟ بعد یک کاری میکردم دیگه بله ولی مریضه ببین این رفتار تو فقط باعث میشه مادرت نسبت به با من بدبین تر بشه فکر میکنم من نیمته میخوام بین شما فاصله بندازم کارت درست نبود بالاخره مادرت هم به مرور متوجه میشن ما نیستیم آدمایی که بخوایم پولمونو به روخ بکشم مثله فقط پول نیست وگر نه من خودم میدونم باید رعایاتشو کنم چیه پس؟ ازدواج و طلاق من؟ چرا اون روز که ازت پرسیدم پنهانش کردی؟ چی میگفتن؟ حقیقتو نمیخواستم به خاطر گذاشته ناراحتت کنم بلاخره مادر تو با این موضوع مسئله داره باید مشکلش حل بشه میشه چه جوری؟ باقا ارکردن رفتن؟ از بردن رجبش باید هم حرف میزه خب این بردن کیه نمیدونم رونا واقعا نمیدونم آزم که تو اینجایی ای؟ آقا کامیوردران باید بخ میشم چرا؟ دولار کلی کشیده کنی خب من چیکار کنم بیا آقای کن دلار بهت پس بدم خونه ها بدم بده <تصفح> مسخره کردی منو قیمت خونه که دیگه قیمت سابقش نیست یعنی من چیکار کنم من چه میدونم حالا خونه میخوای چیکار اصلا فعلا دلار رو نگذر ببینم چی میشه اگه همینطور بیاد پایین ترچی. چی اینقدر بیا اینجا که کارتم از دست بدی برو به کارت برس تو همش اینجایی دیگه با سلامتی بچه‌م من با خوله اون دلارام خواستم یه خونه بزرگتر بگیرم. الان همونم ندارم. اگه زنم بفهمه؟ از کجا بفهمه؟ شما الان دارید اونجا زندگی میکنی. آخر دو روز دیگه که می‌خوای بفروشیش؟ موقع بفهمه من چیکار کنم؟ من چه میدونم برو تو از این بد تناشا دیگه جایی پیدا کن بگیر من خونهام 80 متر بود. با این پولی ای خونه 50 متری هم نمیتونم بگیرم. وام بگیر یه کاری بکن. من که مسئول گرون شدن ارزون شدن دلار نیستم که کارام یک خونه ایمانو بهم بده تو ما هم خوبه که به هیچ جاد بر به کار زندگی ترست هست من هم خداحافظ این جج میکنه قفل درو عوض کردی چی میخوای خرید کردم برا لازم نکرده ا کاری که بهت گفتم انجام دادی اونم به موقع پس منم همون به موقعش میام حالا بز بیام تو خواهرت رو زنگ روش روشنش رو چیزی بگم من فهم فهمیدم چی میخواد بگم چی میخواد بگه چرا بچه ها رو نمیدی؟ اینجوری آلافتشون کردی الان دو ساله این بچه‌ها آلافت میدم کی چداري دو سال فوت کرده، زمینارم که فروختی. زادمشون به کار باید کم ساب کنن. قصد ساب کنن؟ این بیچاره اون طرف دنیا دستشون هم از همه چی کوتاهه. به تو اعتماد کردم. برای خودم که بر نداشتمه بله، من که بهشون نگفتم تو خونه و ماشین خریدی. خب فقط مال من نیست که مال هممونه. ولی به نام توه آمه. بذار من به اون چیزی که میخوام برسم. پول همه رو میدم. فکر کنی سهم خواهر میخورم؟ من نمیدونم تو دیگه چی میخوای که بهش رونا. روت میشه دوباره این حرفار بزنی؟ واقعا روت میشه این حرفها بزنی؟ این همه این خانواده اذیت کردی تو جوون بودم خام بودم حالیم نبود. الان قضیه فرق کرده. چه فرقی کرده؟ حداقلش می که و خوب شده. این پولا که همش مفت تو نیست. پدر رونا فقط پول براش مهمه فقط و فقط پول. بس کن کام این کارا را بس کن نمیتونم. زنم بوده. مفت از دستش ده. رونا به تو جواب مثبت نمیده. نمیده چون من پشت ندارم. نه پدری دارم نه برادری شما از من پشتیبانی کن. رونا رو به من برسون رسون استکتتی که ایگانو یک قرونشم بر نمیدارم. قسم میخوا قول میدم اما؟ سلام آم مورتزا چک کریم کجایی هسته نمال بدبختی آم فونه گرفتی؟ نه دولار خیلی کشیده پایین حالا تکلیف چی میشه یارو به ارامیه بیاد نمیذاری که ما تو این سر رو بمونیم خدا شما از شما نگه داشت کاش با تو مزایدر برنده شده بودی تو از این سامان چیزی دیدی که ازش خوشت نمیاد تو هر کاری که بهش مربوط نیست دخالت میکنه انگار نه انگار زیر دسته نخواد دستور بده چطور؟ نیچه همینطور بروازه خانم جام مرده باید کار داره و سلام را میاد ما که باید کارمون رو کنیم بریم صبح پیش بهرانو بودم بهرانوی که بهرانوی نمیشنستی ایش نه همون که موزهای در برنده شده چیزی ازش نشنیدی؟ نه رو مخان خیلی نزدیک بوده خیلی شد بچانسی آوردین البته ممکنه تقلب شده باشه نخوان پیگیری کنم آره قطعا پیگیری کن حتما پلگیری میکنم. سلام. بله هست. آ پیش که اتاقه هاست این هم یه تصویر کلیه دیگه کلم با دوربین مداربسته بسته چک رو چیک میکنم صفحا این هم نشون بدم این دختره رو فعلاً گذاشتم جای خودم البته همش با دوربین چکش میکنم خیلی کار داره تا راه بیفته تو اینجا دوربین مدار بسته نذاشتی؟ اینجا نه نیازی نیست هزینه اضافی. ولی تو ماهی سرم... البته ماهی سر سابقم همه جاش دوربین داشت. دیشب چی نگفتی؟ دیشب؟ یادت راست؟ نصف شب زنگ زدی منو بیدار کردی. کلا <leri avec> حواست نیستا؟ نه بابا حواسم هست. گفتم فردا شب که خاستگاری اومدیم، پس فردا صبح هم بریم معصر عقد کنیم. حالا چرا با عجله؟ دلم میخواد قبل از پروازمون با سفان بشه. <زبق> چه راتی به سفر شما داره؟ تو پدرت بریم برگردیم بعد. ما بریم برگردیم پس شما این چیکاری؟ من مریضیم. ناسلامتی خواهر بنده و دوست چند سالیش شما قرار بعد از سالها بچه دار شد شما از صبحش رسما همسر عبده بنده قرار ستایی بریم حسن این عجله داشته و زفت چرا تو فکری؟ فکر مزایده بدم نمی‌کنی؟ قرار شد دیگه فکرشو نکنی. می کنم یکی اینجا بهم خیانت کردهافدی بر مست بینه فکر می کنی یا مطمئنی. حالا دیگه فکرش نکن ما کار مهم تری <تصال> داریم مادر چیزی شده نه چه زود بریشتی خونه رونا کامیار دست سر من بر نمیدارره مگه تو که تری تعاد نداد باز اومده سراغه بلا که نه نیمت نه پس چی همون چند سال پیش گرم زد به زندگی من من الان بتابان اون اشتباه پس دادم دیگه اون اتفاق تموم شده گذشته رو که نمیشه عوض کرد بله منو شما اینو میگیم بقیه اینطوری فکر نمیکنن بقیه یکی آرش مهمه که براش مسئله نیست مادرش که هست حدس رفتنش پیش, پیش پدرت بهونه اختلاف طبقاتی به حال مادر آرش هم بعد با این داستان کنار بیاد خب مشکل منم همین جاست دیگه نمیدونم چیکار کنم این مساله رو بپذیره آرش باش حرف بزنه فایده نداشت کارشون کشیده به دعوا آرش از خونه زده بیرون ای بابا اینجوری که به جایی نمیرسین رونا چون؟ به آرش بگو من میخوام رو ببینم آقا آره خلاستاتاست سامان بودا دیر شو شادی ای. خیلی رو مادی. دیشوار. دلم کار داشتم. یه دیدی کندش شده؟ زیده چی بگه نمی دارم گفتم سا شاد همینجوری به توی چیزی گفته ایچی نگفت عجیب نیست خیلی راحت با این ماجره که کاری کاریت دستش برنمی بهره ایم در زیده رو دیگه چی کار شو چی کارو کار دیگه دیگه نمیشه اینجامون بس فکر جای جدید باشیم نمیدونم حواسم برات مهم هست چی به میشه بگی حواست کجاست حواسم به شماست آره معلومه. گم کارو چی کار کنی حواسم پرت شد الان سر نمیدونم یعنی دنبالشم ببین تو فعلا چیزی به مامانت نگو از مانجره ما رو بازه من شب جمعه بیام خواسته بری بعد میگیمش همین شب جمعه؟ هرست شد چرا سراد خونه میخواد برونای اجازه پدرت که نمیتونم من که چیزی نگفتم بفتن من میدونم چیزی چی رو میگسره اینجوری کارمون را نمیفتم حالا چقدر میخوای بگی. سبه پنجا ملون اجده درصم چجوری میخوای پسش بدی؟ کار میکنیم در میاد ندام خونه پدرش تو هم که چسبیدی به این کاره در وقتی رکتی ببینه کارم گرفته و این بار موفق شدم میاد همجوری هم میخوای ادام بدی دیگه تو اینجا بو ندام خونه باباش اون که خونه باباش برامون نیست هم میدونم شما هم فکرت بابا بابا همه اون گیر افتادن نه انکاریم. هم من هم رونا. بعد فکر کنم ببینم چه جوری میتونم راستش کنم. دشارتون بالا پایین نمی شد حتما دارواتون رو درست نمی خورید دیگه والا مگه اگه می دونستم حالتون بده اصلا حرفی نمی زدم چه خبر شده مگه؟ می بیاد خواستگاری کی سامان دیگه تو هاگیر و واگیر چه هاگیر واگیری ها مامان جان دقیق کافیه شما آرشت هم ماشتی کنیم من با کسی غر نیستم بس کوتاه این دیگه سنگ خودتو به سینه زنی؟ و مامان تو چه سنگی؟ الان اومد این آقا سامان شما اومد ما که شناخت درست حسابی در موردش نداریم ممکن اصلا من ازش خوشم نیاد خب شما بذارید بیاد ببینینش بعد اگه خوشتون اومد میرین تحقیق می‌کنین من که نمی‌گم ندیدون نشناخته آره الان اینو میگی اما اگه خوشم نیاد تو مثل داداش تو رو من وای میسی دیگه اصلا در موردش حرف نزنی من میترسم آرش اصابش خرد باشه بعد بدتر بشه سلام سلام سلام دستگاه فشار چرا آوردین؟ از فشارش پایینه مامان جان قربانت برم باید مراهات کنی دیگه فردا وقت چکا پتا. صبح اول وقت باید بریم آزمایش خون و بنده سونوگرافی و اینا من مذارت میخوام یه دفعه از کوره در رفتم دست خودم نبود ببخشید شما فقط یه فرصت به من بدین بابا شیش ماه به ام زمان داده که ببینه کارو بارم چی میشه شما که هنوز رونا رو ندیدی ندیده و نشناخته داری میگی نه اقلا یه بار ببینینش بعدش رو بگین این کارو به خاطر من بکنی اهش می مادرش میخواد شما رو ببینه. از تش بیایر دمدنله سلام سلام خیلی عذفیم می یه نفر با ماشین شما با من تصادف کرده حیر که همین سرش شب بزارین زنگ بزنم خودش بیاد خسارت شما رو ببینید شما هم تیبا سفید هست دیگه تیبا سفید مالو است. ماشین من این پراید نوک مریادیت تیبا پس... زده به ماشینت بله بله من با... با... با... شده. تو فکری همه چی با هم خورده رامینان خیلی داغون بود شما به این بچه محلت دادی من به آرش این فرصتو دادم حالا اگه باقیان تو کارش موفق باشه با ازدواجشون موفقی؟ قول دادم از تای قلبت رازی من ازشون بدم نیومده هم خودش هم مادرش یه جنم و اصالتی دارم الان آرش با رامین و رونا شریکه باید سرمایه بذارن اگه نظرن کارشون به نتجی نمیرسه دویستی میلیون پول گذاشتن دیگه من هیچ پولی بهشون نمیدم پول نمیخوان که رامین خودش میخواد باهم بگیره من گفتم اگه شما موافقی یک کمکی بهشون بکنیم سند خونه رو من بدم بهش که تا خیر خره بره زیر بارقه کار میکنن پولش رو در میارن ندارم روز زنگ زد چی گفت میخواد نهریش رو بذاره ایش رو میگه یارامین اون پولی رو که گذاشته تو این شرکت بر میگردونه یا این کارو میکنه. سلام بابا سلام قربونت برم پونه جون سلام سلام داداش به نرفته سر کار اصلا چرا امروز میخواد بره سر کار شب مگه نمیخوایم به این خاصگانی؟ حالا منم بهش میگم ولی مگه مغزش فروم میره ما کو تا شب بعدش هم خاصگاری یا عقد و عروسی نیست که <تصفيق> بابا حالت چطوره؟ من اگه توی که روز عقد و عروسی هم میان از ماهی سر رو ور میدارن <تصفيق> نگفتی حال خودت چطوره؟ ما خوبم دیگه باید کم کم آماده شم یکی دو ساعت دیگه برام بیمارستان بیمارستان واس چی فردا ماگه روز زایمانت نی چرا فرداست ولی من باید 24 ساعت قبل اونجا باشم دیگه کنه جان خیالت راحت بشه فردا اصل خانم صحی و سالم دنیام میاد ما هم میایم میبینیمش ان شاء میگن پجما میگم یه دونه دیگه هم بلیت میگرفتی با ستاره ستایپم شدی میمدیم پیش من دیگه خیال کردی گرفتم ای دروغ میگی حالا به من نگفته بود پنهان کرده بود نه که فردا عقل میکنیم هم که دیگه مشکل نیست با هم میریم اصفه هم پیجمان به این صورت حال خانوادهش معافق هم دیگه اونه خدا همه چی رو سپردم به خودش بچه هم که نیست منم هم میشنسن بابا یه کاری با ما نداری چرا چرا کار دارم؟ ای پیجمان یه دقیقه وایسا انگوشتر گرفتی؟ نه اصلا حواس هم نبود خوب شد گفتی تو چقدر خینگی بدون نشون که نمیشه. ام شب که فقط خواستگاری نیست بله برونم از برون باید انگشتتر رو ببرید دیگه باشه الله با خود ستاره قراره می زمین با هم دیگه میگیریم بگیر یا یادت نره فر منم خیلی دعا کنین خب؟ اما جز دعا برای تو کار دیگه نمیتونیم بکنیم این جوون عروسی کنه تو هم بری و این به سلامتی بچه تو به دنیا بیاری من دیگه غی تو این دنیا نداشت این بابا ایشالله خب ای کار نداری خداافسی کنیم نه غر برم خداافس خداافس بچه من این لگمونو رو ثبت کردم خوبه؟ چی شده؟ ما اینس جور نشد هم به چند نفر برای گذاشتن اکس آدرس خونه تو ساک گفتم بیام برای قرار داد آره شون همین الان که نبود بهشون پول بدیم آره ولی من باید بدونم کی ای پول تو دستو بالمون میادرام اینجا همینطور رو هوا که نمیتونم بعد برید بدم به مردم احتمالاً از فکر سرمایه‌گذار دیگهام باش. خب دیگه چیزی دست خودمونونه نمیگیره. حالا من با چند نفر صحبت کردم، ممکنه از یکیشون پول قرض بگیریم. با چه بهره‌ای؟ مطمئناً بیشتر از دو بانک. مشکل وام چیه؟ سند نداریم بذاریم. اراش تو سند داری؟ واسه من اگه میشه به اسم تو وام بگیریم. من سندم گیره بانک به خاطر بیماری مادرم. هنوز درام قسمیده؟ سلام کاملاً مادر. سلام کشمش میدی. عالی تو بی. نه نه میسی. بچه ها نیستن؟ آره تو چطوری؟ سلام مامان. سلام مادر. کشمش میدی. میسی حسن مادرم آقایش. سلام خیلی خوش بخده. سلام منم همینطور وش. سلام مامان. سلام مادر. اینجا چی میفرستین؟ آره چرکنه. بفرم. در زمان مخصم مداری شمارم ببینم گفتم بهش پس بهشون بفاهم این که میرم دیدنشون امروز اگه امروز قینادشون باشن بله باشه چشم میگم بهش. ممنون اما از نباشه. من میرم براتون چای بیارم دستت درد نکنم مادر. خب تا خوبی امون همه چی رو براز حرکو دارش بله شکر چیزی کرده. ندا میخواد مهریه‌اش رو بذاره اجرا. پس شمشور از شمشو از رو بسه. نه مادر، نگران زندگیشه. دلش میخواد برگردی شرکت پدرت. منم گفتم که دیگه برنامه میگردم و اینجا میگم کار خودم شروع کنم. خب بعد باش حرف بزنی. اونم بعد موافق باشه. که پسر مجرد نیستی هر تصمیم دلت میخواد بگیری پسر چهارده سالم نیستم که دیگران برای من تصمیم بگیرم به من بگن چیکار کنم چیکار نکنم؟ دیگران که زنته پ سالی کنار وده حتی بعد از اون هستی شما الان اومدین اینجا به من بگین که من برگردم این کار اینجا تعطیل کنم آره؟ نندا به پدرت گفته هر پولی که اینجا ریختی بعد بهش برگرد بله رو اجراام میذاره بره من تصمیم خودمو گرفتم کاری که شروع کردم اون نسیغه نمی کنم اومن. بچه شدی میخوایی بازی کنی وقتی از در اومدین تو خیلی خوشحال شدم فکر کردم سند دوردین برای وام من با پدرت حرف زدم گفت هر کاری دوست داری بکن. یعنی می‌تونم روی وام حساب کنم؟ وام بگیری پرماکولی قسط زدی از اون طرف ندا مهریهش رو میخواد چیکار کار میکنی؟ موان من همه یه سعیم رو می‌کنم که این کار رو بندازم زودتر به درآمد برسیم اینجوری نظر ندا ما عوض مطمئن نه. اگه به درآمد نرسید چی؟ اعت ندین منم وام نمیگیرم ولی اینقدر دوستاشا شده رو بر من هست که بتون از پول قرض بگیرم این کار رو راه بنداازم. اگه تش می شددی اصلا به اعتماد من آ مهریه میخواد؟ اگه اتفاقی برای آرش بیفته کی از اون؟ اینکه طلب میخوره. کنه از بزه این برس کفشو باش درست هست بزه اوزه کاربونه این پسرها از اینجا به پای دستمون بردش به من دروغ نگو راستشو بگو ببینم چی شده چی بردشتشو بگو؟ این در چند وقته با هم تو شم. آه در بفهم بود.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 از راه رسید روی راپل نشست دکمه های قلب من دونه دونش بل شدن گفتم این یه ماجز است خیره شد به آسمون همه ستاره ها دونه دونه گل شدن مهربونی ایش نازنینی ایش آخریم تکه این جورچینی ایش بهربونی ایش نازنینی ایش آخریم تکه این جورچینی ایش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 مهربونی ایش ای نازنینی ایش آخرین تکیه ایش جورچینی ایش